الحمد لله المشرقان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وعلى آله وعلى آله، اللهم اعذ عنا، اعذ عنا، اعذ عنا، لا يوم إلا يوم من قومك، لا يقبلكما ولا نقطع إليك، وأنا أبصر قلوبنا بضيائنا ذرها إليك. حتى تخرج أبصار القلوب حجم النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أروخنا معلقة مع الزبثك بمحمد وعلى أيدي صلى الله عليه وسلم ده خصوصين مفهوم قلم داد شدن چیست کی و در چه وضعیتی و چه معیاری میتونی بگیم چیزی مفهوم یک منطوب است گفتیم اینجا نظریه‌ها و تغییرهای مختلفی هست یکی تغییر محقق حراسانی بود که شو فرمود که مفهوم مثلا عبارت از, از یک حکم انشائی یا اخباری که لازم ی خصوصیتی است که در معنای مطابقی وجود داره گفتیم این تا اشکال داره اشكالاتچه مترح کردیم نظر دیگه نظر باید تقریر مرهوم محقق نائنی نیست که ایشون فرمود که مفهوم عبارت هست از, از اون معنای التضامی و تلازمی که لازم بین به الاخص معنای منطوب باشه لازم بین باشد لازم بین به معنه الاخست معنای مطابقی باشه لازم غیر بین، مفهوم قلم داد نمیشه در نتیجه ما ممکن است مفهومی معنایی، معدایی لازم معنای مسرح باشه حکم معین باشه اما بیان نباشه مثلا مثل وجوب مقدمه واجه براخره بین مقدمه واجب بازل مقدمه ملازمه هست و همینه اما به این ملازمه هم. این لزوم لزوم بیان نیست اگر بیان بود اونگاه می شود مفهوم مفهوم فرقش با سایر عناصر دو قسمتی دو لنگی و تعبیری که بینشون ملازم هست، اون نوعی از معنا و مسئله رو مفهوم معنای منطق قلمداد میکنیم که لازم بین باشد. این معیار پس بنابراین خیلی راحت. میشه تشخیص داد که چه چیزی مفهوم هست مفهوم معنای منطوق هست چه چیزی مفهوم معنای منطوق نیست این مهیار از که به ندار تقریبه و تقریر میزای ناینی هم محل تعمله ایشون که معنای مفهوم اون است که بین این معنا با معنای منطوق ملازمه باشد و این لزوم و التزام لزوم بیین باشد مفهوم لازم بیین منطوق باشد نه هر لازمی معانی لازم‌هایی دارند لازم, های دارن، لازم های بسیاری دارند امروز در نظریه های جدید معناشناسی میگن لازم معنای حالا اون تو در الفاظ میگن و شاید در جملات هم میگن لوازم خیلی زیاده اصلا قابل شمارش نیست نهایت نداره هر معنایی بی نهایت لازم داره در نظریه های قدیم و سنتی عدب اسلامی عدب عربی هم این بحث مطرح بوده در نظریه نظریه پردازان عدبیات عرب در گذشته مثل مثلا جورجانی نمی جاهز نمی دارم اینها هم خب از این بحث داشتن که مثلا در معنای مجازی در استعاره در اینها ما معانی رو به عنوان معانی لازم معنای اصل که معنای اول و معنای منطوق و موضوع الله لحظه فراوان داریم به نتیجه اگر کسی بگه که مثلا این لفظ بر معانی علاو بر معنای اصلی علاو بر معنای موضوع به معانی دیگری که لازمه این معنا هستن دلالت میکنه باید بگیم تا کجا بی نهایت معنای لازم میشه فرض کرد نه اشتراک لحظی نمیشه نه چون ادعا میکنن همین نکته رو بخونم از کنم نمیگن که لفظ در قوال این معنا با همه معناهایی ولو بی که لازم این معنا هستند بر اونم وضع شده یکی از اشکالاتی میگیرن میگن که واژه هرگز قادر نسل معانی بی رو در نظر و وضع کنه. چون اگر میگیم وضعیه یعنی یه واضعی لفظ رو در نظر گرفته معنا رو در نظر گرفته وقت این لفظ رو به اصطلاح متنعنی کرده معنا دار کرده خب باید بتونه در نظر بگیره اول خیلی از معانی به ذهن واضع در یه ظروف تاریخی میرسه. بعضی از معناهای لازم بعدها به وجود میاد بعدها به نحوی میشود که از این معنا ما به یه معنای دیگر هم به نمان لازمون منتقل میشیم وانگهی علافه از که ما در همون ظرف وضع لفظ در قبال معنا اگر معانی لازمی یکی دو تا ده تا پنی مثلا 100 تا هزار تا بتونیم فرض کنیم اون زمان هم به شبت فرض کرد یعنی کسی تفتون داشته باشه بیشینه فهرست میکنیم میگه این معنای من به عنوان معنای موضوع در را زد میگیرم یه معانی لازم هم داره یک دو ست تا هزار تا میشموره میگه معنی لفظ در قبال این معنا و این هزار تا معنا وعظ میکنم یکیش ملزوم یکی لازم بقیه لازم هم. یکی معنای مثلا اول بقیه معنای سانوی هم. اگر هم بشه ولی این واقعیت نداره یعنی هیچ واضعی وقتی یه لفظی رو در قبال معنای وعظ میکنه نمیشونه تمام معانی لازم اون رو هم فهرست کنه و بر اون هم وعظ کنه قصد کنه اگر هم واضع ننشسته و ندیده و منظور نداشته و در قبال اونها وقت نکرده اونها نمیشن معنا از این قبیل ایرادها میگیرن البته طبیعه نختر و توجه داشته باشید و اون این است که در مفاهیم ما داریم راجع به مفاهیم جمله بحث میکنیم مثلا مبحث مفاهیم مبحث مفاهیم جملات است. جمله شرطیه جمله ای که درش وسع داره و مسئله ما معنای مفردات نیست معنای الهاز به صورت مفرد محل بحث در مفاهیم نیست ترکیب اون جمله آیا معنای لازمی داره که به اون هم دلالت کنه تا که چگونه لازمی بود تا میزای نهایی بیاد بگه لازم باید بیان باشه نه هر لازمی. این هم توجه داشته باشید. یعنی که جزء مقدماتی که باید مالتنه بیشترم ولی دیگه بعضی نقاط رو نمیخوام تفصیل اینجا پیدا کنم. ارزش میکنم ولی جزء اون اناسری که بعد از تعریف باید توجه چه دیگه هم همینه که وقتی ما داریم مفهوم رو تعریف میکنیم توجه داشته باشیم که اینجا وقتی بساز ما مفاهیم میکنیم مفاهیمی جملاته. مفاهیم الفاظ مرکبه ترکیبی است ترکیبی ترکیبیارو میگیم مفاهیم از که خب ما میتونیم این سوال رو از میرزا بکنیم که شما میفرمایید مفهوم معنای لازم تعیین بالمعلل اخس است نه هر لازم وقت لازم بیانه بلی مدال خست یعنی چی؟ یعنی خب هر کسی با اون مطر مواجهشه اون به ذنش میرسه دیگه بیانه دیگه غیر بیان نیست که با احتیاج به تعمل داشته باشه احتیاج به تدبر داشته باشه تازه تا یه معنای به ذن برسد لازم معینه دیگه به بحث این که شما تصور کنید اگر معنای اصل رو تصور کنید معنای هر هم لازم هم بهذا میرسه رسه. اینش بگ تصور معنای منطوق کافی است برای تصور معنای مفهوم این میشه معنای لازم. و اگر با تصور معنای منطوق و مطابق تصور معنای مفهوم به ذهن ما نیامد من میشون نیست. سال اگر معنای مفهوم آن است که به صرف تصور معنای منطوق او هم تصور می شود لاجرم او هم به خطور می کنه و می فهمیم که این معنا مفهوم همین معنای منطوق است اگر بنا باشد که چونین باشد که دیگه دعوان نداره که و کسی نباید واخه انکار کنه وقتی همه متفنن و متوجه میشوند که این معنا مفهوم آن است خب دیگه نباید تردید کنیم اهل فن باز سری متوجهشن که آقا معنای مفهوم این معنای منطق این است دیگه دعونا تو خب دیگه مفهومونه دیگه اگر بیان باشه در حال که موینیم نزا بر سر معنای مفهوم هست اول نقطه که می شود احیانا ممکنه کسی بگه اینه اللهم الا یقال که ببینید دعوا بر سر این نیست که آیا فلان معنا مفهوم این معنای منطوق هست یا نه در این که اون معنا مفهوم است، مفهوم این معنای منطوق است ممکنه نضاعی نباشه و احلفا میپذیرند که اون معنا معنای مفهوم این معناست این معنای منطوق هست نزاع بر سر اینه که حالا که اون معنای مفهوم این معنای منطوقه است آیا این لفظ هم بر معنای منطق دلالت میکنه هم که بر معنای منطق دلالت میکنه بر اون معنای مفهوم هم دلالت میکنه یا نه و اگر دلالت بکند گفتی این میشه یعنی ظهور داره دلالت میکنه یا ظهور داره در اون هم ظهور داره و اگر دلالت میکنه و یعنی ظهور داره در اون خب این میشه سقرای یک کبرایی که اثبات شده در جای خودش و اون که زوای رجتند بحث بر سر اینه که آیا این معنای مفهوم هست یعنی این لفظ در این معنا ظهور داره یا نداره گفتیم که دعوا بر سر وجوده دیگه میخوام بگیم آقا یا چون این معنای هست یا نیست اگر بود این میشه صورا کبرای ما داریم به معنای که زبای رجتند در واقع سر حجت نیست در واقع بر سر کبرا نیست از زبای را این کبراس اینو همه قبول داریم نزا بر سر اینیست ای هستند نزا بر این است که آیا ظهور دارد لفظ در این معنا یا نه یکی میگه نخیر آبست ظهور در حصر ندارد استثناء ظهور در حصر در مستثنان ندارد شرط, شرط و جمله شرطی ظهور ندارد در اینکه به انتفاع شرط مشبوطا منتویست تا بتونیم معنا بگیریم ظهور ندارد دعواب اصال اینه ارز شبت که ما ممکنه این لقائلانان یقول رو جواب بدین بگیم آقا اشکال ما این بود به میرزا که شما میفرمایید که معنای مفهوم لازم بیینه اگر لازم بیین بود میشه معنای مفهوم یعنی به محض اینکه که شما معنای منطوق رو که معنای اصلی و اولیه تصور بکنید معنای دوم رو که معنای مفهومه تصور می‌کنید، اینقدر این رو با هم چسبیدن ملازمند این ملاک معنای مفهوم شدن است وقتی اینه خب پس بر این به محض اینکه که لفظا ادا می‌کنید، معنا هم معنی دوبامه بزن میرسه دیگه یعنی چی؟ یعنی درلات داره دیگه این ظهور داره ظهور ما چیه؟ ظهور همین است که شما لفظو که به زبون بیارید صوتی تولید کنید کسی دیگه بشنوه سریع تصوری از اون به ذهنش میاد الان هم اینجا همینه دو تا تصور به ذهن آدم میرسه یکی معنی منطقه تصور میکنه آدم دیگری معنای مفهوم رو تصور میکنه چون شما دارید میگی لازم بیین تعمل و رو و استدلال لازم نداره به محض که شما معنای اول را یعنی منطوع من، رو به خاطر رو تصور کردید معنی دوم یعنی معنی مفهومم تصور میشه اینقدر رو به همچه هست به این ترتیب در واقع ما میگیم این لفظ در این معنی ظهور داری یعنی چی؟ یعنی لفظ این معنا رو به خاطر میاره این دیگه ما مرزمون این شد که آقا اگر این جوره که دیگه دعوان نداریم که مگر کسی میتونه جرعت کنه بگه که آقا لفظ وقتی استعمال میکنید یه معنا به ذهنتون خطور میکنه با سرعت این در روز ظهور نداره ظهور یعنی همین دیگه ظهور یعنی همین که شما لفظو میگید لفظو میشنوید حالا چه مفرد چه جمله تا میگید این بزن خطور میکنه ظهور یعنی این ظهور تصوری همینه دیگه این به هر حال یک نکته به یک اشکال زیر فرماشه میگذار که اگر واقعا معنای لازم اینه و اگر هم معنای مفهوم همون معنای لازم بیینه خوب اصحاب فن و لغویین و و اهل ادبیات امومن اینا دیگه افراد فتن فکور و اهل فندن دیگه اگر به زن عوام هم نرسه به زن اینا که دیگه میرسه دیگه مطلبی دوبون بینه که قائده اهل اون لغت دیگه نه اینکه فلان آقا ممکنه که میان عاشق و معشوق هم زیست چه دارد اون که اشطور میچروند این دو نفر با هم توایی درند فرض این که اهل لغت دیگه اصلا همه دوستانی که اون لازم اهل لغت هم با اینطور بشه دیگه نه اهل لغت حالا ممکن تو اهل لغت بگیم اغلب مردم مثلا چون خیلی از مسائل بدی هم از که بعضی آدمون بلد نیستن ولی ولی دیگه یعنی پاسخ فرمیشوان میشه دیگه حال اهل لغت اهل زبان معین لغت برنه زبان قردی اهل زبان معینی وقتی این جمعه رو میشروفن این مطلب رو این مفهوم بزنشون خطور میکنی تصور میکنن مفهوم رو هم به اضافه منطوق که خارج ما هم خارج خارج که میشه حالا هر چه باشد این جستورا اینه که قید مطلق همه قید مطلق معنی میکنید من دارم اینجور معنی می‌کنم مطلق اگر اینجور معنی کنید آقا اگر مثلا پس کنید 200 میلیون نفر اهل زبان و فارسیان هر 200 میلیون نفرم بفهمن این مطلق به معنا نه اما مطلق به این معنی که اغلب اهل زبان وقتی دیگه حالا انجام که لزومن زبان به معنای لغت نیست. ولی دیگه بالاخره عموم نه ن ببینید امید... هر کلم دیگه ممکنه یه مکتب بدیهی هم بعضی نشون هم این دیگه نمیشه بایش. یعنی نه نه واسه اغلب دیگه نمیشه گفت قرینه. از قلم دیگه ممکنه خیلی از بدیهیات هم یه نفر نفهمه. این نمیشه گفت که پس این بدیهی نیست بروه آقا بدیهی نیست ولی دیگه اومن بدیهیست نه به هر حال در فضای زبانی کسی داره زیست میکنه دیگه به قول این بعضی از این فلسفی تحلیلی ها اینا میگن زیست جهان زبان در اون اون جمعی اون جماعت که در این زیست جهان زبانی داره زندگی میکنن حالا اینکه چهار نفرم بزنشون خطور نمیکنه اون دیگه کسی از راهی اوناست ولی وقتی اغلب چون اگر بفر که دیویست میلیون نفری که به زبان فارسی سخن میگن همه بفهمن اگه یکشون نفهمیدن، پس این نمیشه اهل زبان یا این نمیشه لازم بگه اینکه دیگه میشه محال دیگه هیچ کسی یعنی هیچ مطلبی رو نمیشه پیدا کرد که بتونیم بگیم این رو عرف اون زبان میفهمه چون بلخری ده تا آدم پیدا میشن که نفهمن نه اینکه اتیله نمیشه گفت این دوستانی مثلا اون نمیشه اکثر حالا بیخرم من مگر یه استثنای بله بالاخره وقت میگم آقا وقتی تو فارس زبونا این جمله ادا میشه اون من متوجه میشم که چاره و دیگه چی بود بله خلاص مثلا اینو حالا شما حالا این مثل این مانند مبنا میشه اون اصل از مون کره نه اینکه نمی‌فهمه میگه می‌فهمم تو چی داری میگی ولی نیست اینجور انکار میکنه الان خب اون شناسی همین خب زبان شناسی همین معیارش اساس زبان شناسی یعنی میگن آقا تو عرف اونا چی میگن؟ چی میفهمن؟ تو عرف اون زبان چی میگن؟ مسئله دقیقی عقلی که نیست والا دیگه نه حالا جایی که شما دارید مثالی میزنید که بر خلاف ظاهر اولش ظاهر لغویش یه معنای دیگه داره که با یه قراری میفهمی اون معنا درسته این معنا غلطه حالا در هر حال من الان در مقام دفاع از مرزا نیستم شما اصرحال میکنید یه چیز دیگر بذاریم گردن مرزا ما این اشکال هم به حرف شما وارده شما میخواید در واقعی اشکالی رو اشکال دیگری رو بر مرزا وارد کنید که آقا لازم بین یعنی چی اصلا اصل لازم بینید یه سال مبرید من... من که مدافعشون نیستم من دارم نقد میکنم اتو. نه من که نمیگم ایشون میفرماد من دارم نقد میکنم فرمایش شما هم یه نقد دیگه میکنید شما میفرمید که آقا اصلا اینجوری میزارو نقد کنیم اول میگه لازم بعین یعنی چی یه اشکال من دیگه نبختم خیلی خب ایشون لازم بعین من سوال میکنم میگم آقا شما میگید لازم بعین این لازم بعین و احل فن باید بفهم اینا بعد بفهمن چرا واسه دعوا دارن الفن الان دعوا دارن بعد گفتم ممکنه کسی جواب بده بگه آقا این که اهل فن دعوا دارن سری این دعوا دارن که آیا لازم هست یا نیست مفهوم هست یا نیست ولی دعوا ندارن در این که اگر مفهوم دلالت نداره میگن اصلش از حبتلش من گوش اول اثبات کن که لازمه بعد خب منم قبول می مفهوم گفتیم نخیر به حال ما داریم الان این مبنا و ملاکی رو که مرحوم میرزا داده گفت آقا شما میگید که اخوندام هم گفت که آقا معنای التزامی یه خصوصیتی که در معنای منطق وجود دارد. اون اشکال کردیم تا. میرزا آمد چون میدونید میرزا دیگه از اون نوچه ها و شاگرده آخوند بوده که فکر کرده تمام توفن کشتی اخوندو رو بلده ولی همهش با آخوند کشتی میگرفته دیگه. یا همه شاگردایی آخوند غالبا دست میزه هم میرفتن درست آخونده هم میرفتن درست میزه میرفتن می می ببینن میزه چه ایرای داره و آخونده میگه هر دور دستشون میرفتن میزه در واقع خیلی از حرفاش ناظر و حرفای آخونده میزه آمده میگه آقا لازم نه هر لازمی مادن واجبه هم لازمه آیا میشه مفاهیم لازم لازم بنیان من الخص باید باشه ما به میرزا ایراد میگیریم میگیم که آقا اگه معنای مفهوم لازم باشد لازم بود که دیگه دعوی نداشتیم اهل که میفهمیدن این لزوم بیانه دیگه اشکال کردیم با زوره جواب دوتیم این یه اشکالی بود که از کردیم اشکال دوم این که میگیم آقا غالب ما در دوازده تا لاغل مفهوم داریم گرچه ما فهرست کردیم اگر برسیم بحث کنیم اما غالبا 3-4 تا از این مفهومی بحث میکنن. خب این در 12 تا مفهومی که مورد بحث قرار میگیره کدومشون اجماعیه همه رو بحث میکنم اینه بحث شرط قایت اینا که دیگه از دون درشته های مفاهیمن هیچ کدومه اجماعی نیستن بسیاری میگن آقا شرط مفهوم نداره وصل مفهوم نداره خواهد مفهوم نداره بسیار میگرد داره مره که اختلافیه اگر بین بود که نباید اختلافی میشد که مطلب سه بومی که میشه مطرح کرد این است که شما میفرمایید معنای مفهوم لازم بیان بر معنای اخصه معنوان منطوقات باشه اگر این بود این میشه مفهوم و میشود حجت یعنی جمله شرطی مثلا در اون صورت در اون معنای مفهوم که عکس معنای منطوقشه درون حجت میشه اما اگر بیان لازم نبود نه این مفهوم نیست که مفهوم نیست، حجت باشد. اگر مفهوم باشد حجت هست شو فرموش میزا، معنیش میشه. آقا یا مفهوم است پس حجت یا مفهوم نیست اصلا. بعد میگیم کی مفهومه؟ میگه اون وقت که لازم بیان بالملل الخاص باشه. اگر لازم بیان بالملل الخاص باشه میشه مفهوم، مفهوم حجت. اما اگر لازم بیان نیست اصلا مفهوم نیست تا اینکه بگیم حجت هست یا نه. ما ارز می‌کنیم که ما جاهایی داریم تمام این در دوازده همه معنای بیان لازمن جوری نیست اما افرادی همه اینا رو یا بعضی از اینا رو که معنای بیان لازم نیست رو حجت میدونن مفهوم میتونن و میگن که جمله در بر اونام داره پس وانا این این میاری که شما دارید میگذارید مورد قبول همه نیست بله الا این کسی بگه خیلی خوب میرزا میگه من اینو قبول دارم من میگم اگر معنای بیین لازمه به معنی اخص بود میشه مفهوم و اگر مفهوم هم بود میشه مدلول حالا اگر بعضی ها قبول ندارند که این معنا ولو بین باشد مفهوم نیست یا عکسش بگن بلغم که بایینه لازم نیست بازم مفهوم است و بازم حجت است دیگه تحصیل من نیست اون نظرش اینه من این میزا اینجور میکنم ممکن اینجور جواب بده در مجموع حال اون چه برای مهم بود این بود که بگیم ملاکاتی رو که اصحاب راجع به این که یک معنای مفهوم انگاشته شود چیست آخوندون رو گفت میزامین اینو مرحوم عقق استوانی یه میار دیگری رو مطرح میکنی که خب الان اگه ورود کنیم قایدتا اون قولی که دادیم که یه دقیقه رو به هشت جلس تموم کنیم نه هست میشه جلسه بعد نظری مرحوم عقق رو به ارزیابی نظرشون رو بحث میکنیم و سلام برای محمد و محمد. <تصفيق>